مسلمانان مرا وقتی دلی بود که با وی گفتمی گر مشکلی بود به گردابی چون می از غم به تدبیرش امید ساحلی بود دلی هم درد و یاری مسلحت که استظهار هر اهل دلی بود زمن زایع شدن در کوی جانان چه دامنگیر یارب منزلی بود هنر بی عیب هرمان نیست لیکن زمن محروم تر کی سائلی بود بر این جان پریشان رحمت آرید که وقتی کاردانی کاملی بود مرا تا عشق تعلیم سخن کرد حدیثم نکته هر محفلی بود مگو دیگر که حافظ نکت دعان هست که ما دیدیم و محکم جاهلی بود